تدی در مدتی که این گفتگو ادامه داشت رویش را برگردانده بود و از روزنه بیرون را تماشا میکرد. آهسته گفت اگه گوشش شنوایی هست که شک دارم اینو بگم که امروز صبح ساعت سه و سی و دو دقیقه از کنار کشتی کوین مری گذاشتیم. در صدایش مانند صدای بعضی بچه های کوچک خشونت عجیب و زیبایی شنیده میشد. هر عبارتش بیشتر به جزیره میماند. که گرداگردش را دریایی مینیاتوری از ویسکی پوشانده باشد. اینو پیش خدمت هر بوپر مسخرش میکنه رو تخت سیاش نوشته بود. پدرش گفت ببین بچه اگه الان از روی اون کیف نیای پایین چونان کشتی کوین مری نشونت بدم که هز کنی. آن وقت رویش را به تدی کرد و گفت همین الان از اونجا بیا پایین بیا برا سر تو کن میگم. دوباره به پشت سر زنش نگاه کرد و گفت. وز ما هم تماشایی ها پسرمون رشد زودرس پیدا کرده تدی گفت من پودی ندارم و دستایش رو برای امنیت بیشتر روی رفع رازنه رو گذاشت و چانهش رو روی دستهایش تکیه داد و گفت مامان اون مردم که تو اتاق غذاخوری سر میزه کنار ما میشینه اون لاغره رو نمیگم اون یکی رو میگم که سر همون میز میشینه درست کنار همون جایی که پیش خدمتمون میذاره خانم مکاردل گفت، عزیزم تدی، مثل بچه های خوب بذار مامان پنج دقیقه دیگه بخوابه. تدی بیان که چانه اش رو از روی استراحتگاهش بلند کند و بیان که چشم از اقیانوس بردارد گفت، یه ثانیه گوش پره موضوع جالبیه، همین مدت پیش که اسون داشت منو وزن میکرد تو زمین بازی رو میگم، اومد بالای سرم و سر صحبت رو و باز کرد. نوار آخره منو شنیده نوار مهمه می رو میگم نه نوار ماه آوریلو یعنی پیش از این که بر اروپا تو تو توی مهمونی دعوت داشته و یکی از آدمای مهمونی یکی از مطن های لایدکه رو میشناخته که اسمش رو نگفت و اونا آخرین نوار منو امانت گرفتن تو مهمونی پخش کردن ظاهرا خیلی خوششون اومده اون دوست پروفسور کاکه مثل این که خودشم تدریس میکنه. میگفت که سرتاسر تا سر تابستون تو کالج ترینیتی دبلین بوده. خانم مک آردل گفت جدی؟ تو مهمونی پخش کرده و همانطور که دراز کشیده بود خوابالود به پشت پاهای تدی خیره شده بود. تدی گفت آره گمون میکنم اونجا که ایستاده بودم پیش اسفن خیلی از من تعریف کرد. یکم دست و پا گم کرده بودم. چرا دیگه دست و پاتو گم کرده بودی؟ تدی با دودلی گفت گفتم یک کم دست و پا گم کرده بودم. میخواستم حالم رو کرده باشم آقای مکاردل که سیگار دیگری روشن کرده بود گفت اگه بچه جون خبر مرکت از روی اون کیف نیای پایین چنان وصف و حالی نشونت بدم که هست کنی تا سه میشمارم یک چطور گوش شنوایی نیست ها؟ دو خانوم مکاردل که به پشت پاهای تدی نگاه میکرد ناگه هم پرسید ساچنده مگه تو بوپر ساعت دهانیم درس شنا ندارین؟ تدی گفت: وقت داریم، خدایا. و ناگهان سرش را از روزنه بیرون کرد. چند ثانیه به همان حال ماند و سپس سرش را تو آورد و گفت: همین الان یه نفر یه صد پر از پوست پرتقال از پنجره ریخت بیرون. و باز سرش را از روزنه بیرون کرد. آقای مک‌آردل خاکستر سیگارش را تکاند و به طنه گفت: از پنجره، از پنجره بگو از روزنه بچه جون، از روزنه و به زنش نگاهی انداخت و گفت پاشو به بستان تلفن بزن سود باش به ممتعین های لایدکر بگو بچه ما چقدر محشره خانم مک گفت چه آدم خوشمزه چطور خود سرکار تلفن بزنین؟ تدی سرش را کمی تو آورد و بیان که رویش را برگرداند گفت خیلی قشنگ شناورن، خیلی جالبه تدی این دیگه بار آخره تا سه میشمارم اون وقت خودم تدی گفت وقتی میگم جالبه نه از این نظر میگم که شناورن از این نظر جالبه که من از وجودشون خبر دارم اگه اونها رو ندیده بودم اون وقت از وجودشون بیخبر بودم و وقتی از وجودشون بیخبر بودم نمیتونستم بگم که حتی وجود دارن این نکته قشنگه نمونه خیلی قشنگ و محشری از خانم آردل بیان که ظاهرش نشان بدهد که زیر شمت تکان میخورد میان حرفش دوید و گفت تدی برو بوپر رو بیارش پیش من ببین کجا رفته دلم نمیخواد باز امروز با تن آفتاب سوختش زیر برق آفتاب اینور اونور بره تدی گفت تنش خوب پوشونده وادارش کردم شلوار رو بپوشه الان چند تاییشون فرو میرن چند دقیقه دیگه فقط تو ذهن من شناور میمونه خیلی جالبه برای اینکه اگه آدم از یه زاویه به خصوصی نگاه کنه میبینه که اصلا از اول تو ذهنم من شناور شدن اگه اینجا نییستاده بودم یا اگه کسی از راه رسیده بود و سرمو از تنم جدا کرده بود همون وقتی که داشتم خانم مکاردل پرسید الان کجاست یه دقیقه نگاه تلی رویش رو برگردان و مادرش رو نگاه کرد و گفت چی؟ الان بوپر کجاست؟ دلم نمیخواد باز داروبر سندلی های عرش بگرده مزاحم مردم بشه اگه باز اون مردک نرخر دل با پس نباشت دوربینو بهش دادم آقای مکارده تنش رو روی یک دست بالا آورد و گفت تا دوربینو بهش دادی؟ با چه جرأتی این کارو کردی؟ لایک های نازنین منو دیگه نمیذارم یه بچه شش ساله را بیفته هر کاری دلش میخواد بکنه تدی گفت یادش دادم چطور نگهش داره تا از دستش نیفته فیلمو هم طبیعیه که درآوردم. تدی من دوربینم رو شنیدی چی گفتم همین الان باید از روی اون کیف بیای پایین و بری سر پنج دقیقه دوربین منو بیاری بدی دستم وگرنه نابغه کوچولو رو پرتاب میکنم همون جایی که پوست گم و گور شدن شد؟ تدی روی کیف چرمی گلاتسون جا, به جا شد و پایین آمد. خم شد و در حالی که پدرش هنوز روی آرنجش تکیه داده بود، و مثل مبصرهای کلاس میپاییدش، بند کفش چپش را بست. خانم مکاردر گفت: به بوپر بگو کارش دارم. یه بوس هم به مامان بده. تدی بنده کفش کتانیش را بست و سرسری گونه مادرش را بوسید. او هم در مقابل دست چپش را بیرون آورد تا دور کمر تدی حلقه کند. اما همین که دستش را بیرون آورد، تدی از جایش بلند شد. دور زد و آمد میان دو تخت. خم شد و با بالش پدر زیر بغل چپ و زیرسیگاری بلور میز پاتختی توی دست راست ایستاد. سیگاری را به دست چپ داد، کنار میز پاتختی رفت و با لبه دست راستش خاکسترها و ته سیگارهای پدرش را توی زیر سیگاری جارو کرد. سپس پیش از آنکه زیر سیگاری را سر جایش بگذارد با ساعدش باقی مانده خاکسترها را از روی شیشه میز پاتختی پاک کرد ساعدش را با شروارک خود تمیز کرد سپس زیر سیگاری را با دقت زیاد روی شیشه میز پاتختی گذاشت انگار به گمان او جای زیرسیگاری درست در وسط شیشه میز پاتختی بود و نه هیچ جای دیگر آن در این مدت پدرش که او را می‌پایید ناگهان رویش را برگرداند تدی از او پرسید، تو نمیخوای، من دور بینم و میخوام، جوون. تدی گفت، اینطور که خوابیدی خیلی راحت نیستی، فکر نمیکنم راحت باشی، اینو همینجا میذارم و بالش رو پایین تخت دور از پاهای پدرش گذاشت و راه افتاد که از اتاق بیرون برود. مادرش بیان که سر برگرداند گفت، تدی، به بوپر بگو پیش از شروع درسه شنا بیاد پیش من، آقای مکار دل پرسید چی از جون این بچه میخوای؟ انگار نمیتونی ببینی چند دقیقه بیکار باشه. خودت میدونی چطور باش تا پس بذار بهت بگم که رفتارت با اون مثل رفتار با جانی های خطرناکه. خطرناک؟ خیلی عجیبه عزیزم. که ای تا حالا حرف‌های انگلیسییا رو میزنی؟ تدی لحظه‌ای کنار در، پا به پا مالید و متفکرانه با دسته در که بازی میکرد و آن را به چپ و راست می‌گرداند گفت: وقتی از این در بیرون میرم ممکنه فقط تو ذهن تموم آشناهان وجود داشته باشم شاید هم من پوست پرتقالم خانوم مکاردر که هنوز به پهلوی راسته راست کشیده بود از آن سر اتاق گفت چی گفتی؟ عزیزم؟ پسرجون برو دنبال کاری که گفتم برو اون لایک رو بردار بیار بیا یه بوست به مامان بده یه بوست گنده و قشنگ دی با پریشان خیالی گفت حالا نخستم و در را پشت سرش بست